شنوندگان عزیز، به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. امروز باز هم به بررسی انجیل لوقا ادامه میدیم. ما این فرصت رو مقتنم میشموریم که به همراه شما کلام خدا رو مطالعه میکنیم. متشکریم که علا رقم همه مشغولیتاتون وقت گذاشتید و در این دوری مطالعاتی با ما همراه هستید. خداوند، چیزهای زیادی برای اون مختن به ما داره که چطور از زمان، مهارتها و پولمون استفاده کنیم؟ همه اینها های خدا هستند و ما باید پیام او رو دریافت کنیم تا بتونیم این حقایق رو در زندگیمون به کار بگیریم که تأثیر ابدی در زندگیمون خواهند داشت. دعای اینه که خدا گوشها و های شما رو باز کنه تا بشنوید و درک کنید. بیایید به اونچه خداوند میخواد به واسطه کلامش به ما تعلیم بده، به دقت گوش کنیم. عیسی به شاگردان فرمود: شخصی ثروتمند مباشری داشت و شکایتی به او رسید که آن مباشر دارایش را حیف و میل میکند. پس به دنبال او فرستاد و گفت: این چه حرفی است که درباره تو حساب حسابهایت را واریز کن چون دیگر نمیتوانی در اینجا مباشر باشی. آن مباشر پیش خود گفت حالا که ارباب من میخواهد کار مباشری را از من بگیرد چه باید بکنم من که نه توان بیل زدن دارم و نه روی گدایی کردن آری میدانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقتی مرا از این کار بر کنار کرد اشخاصی باشند که در خانه های خود را به روی من باز کنند پس بدهکاران ارباب را یک به یک حاضر کرد به اولی گفت چقدر بر باب من بدهکاری جواب داد صد پیمانه روغن زیتون گفت بیا این صورت حساب توست، بنشین و به جای آن بنویس پنجاه پیمانه به دیگری گفت تو چقدر بده کاری؟ گفت صد خروار گندم به او گفت صورت حسابت را بگیر و به جای آن بنویس هشتاد خروار آن ارباب مباشر نادرست را به خاطر اینکه چنان زیرکانه عمل کرده بود تحسین کرد زیرا مردم دنیوی در مناسبات با هم نوعان خود از ایمانداران زیرکترند پس به شما میگویم مال دنیا را برای به دست آوردن دوستان مصرف کنید تا وقتی پولتان به آخر میرسد شما را در خانه‌های جاودانی بپذیرند کسی که در امور کوچک درست کار باشد در کارهای بزرگ هم درست کار خواهد بود و کسی که در امور کوچک نادرست باشد در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود پس اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد و اگر شما در مورد آنچه به دیگری تعلق دارد امین نباشید چه کسی آنچه را که مال خود شماست به شما خواهد داد هیچ نوکری نمیتواند تواند غلام دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم بنده پول. فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره کردند زیرا پول دوست بودند در باب شانزده لوقا دو مسل در مورد مرد ثروتمند داریم هر دوی این مثلها باید در فضای بیانیه عیسی که در دو جلسه قبلی بررسی کردیم مطالعه بشن. بر اساس انجیل لوقا عیسی خدمتش رو با بیانیه شروع کرد و اون بیانیه معموریت و خدمت او رو برای ما به طور اجمالی نشون داد بر اساس بیانیه او کسانی که در روح فقیر بودند به لحاظ اینکه کور بودند و اسیر و شکسته و کوی بودند قرار بود ببینن آزاد بشن و شفا یابند در انجیل لوقا دیدیم که عیسی این بیانیه رو در باب چهار اعلام کرد و در باب پنج ثابت کرد و در سراسر انجیل لوقا اون رو به اجرا گذاشت. در انجیل لوقا میبینیم که عیسی مرتبا رو به مردم میکنه و اونا رو اینگونه به چالش میکشه. آیا در اجرای مفاد این بیانیه با من همکاری خواهید کرد؟ ما این رو در دعوت او از رسولان از جمله پتروس می بینیم که اونا رو به چالش میکشه که به جای ماهی انسان رو سید بکنند. ما این رو در جلسه قبلی در باب 15 لوقا دیدیم. در مسائل چیزهای گم شده که عیسی خطاب به افراد دایره بیرونی که از این واقعیت ناراحت بودند که گمشدگان نجات اند گفت. او با اونها گفت: نمیخواید بیایید با من در مسائلی که در دایره درونی جریان داره؟ برای نجات گمشدگان همراهی و مشاركت کنید عیسی میگفت بعضی از این افراد مثل گوسفندان گمشده هستند بعضی مثل سکه گمشده و بعضی مثل پسران گمشده. اما او در باب 15 به برادر بزرگتر التماس میکنه و به برادر بزرگتر که همون رهبران مذهبی هستند میگه وقتی گم ای پیدا میشه تمامی آسمان غرق در شادی میشه چرا وقتی گم ای نجات پیدا میکنه شما شادی نمیکن؟ چرا مثل برادر بزرگتر که عصبانی بود و داخل نمیومد هستی؟ چرا نمییید و در دایره درونی با من مشارکت نمی کنید؟ در باب شانزده به دنبال مثل چیزهای گم شده ایسا دو مثل در مورد مردان می میزنه؟ اولی به نظر میرسه مثالی منفی هست اما در واقع اظهاری مثبت در مورد مشارکت با عیسی در معموریتش هست. بعد در داستان دوم او راجع به مرد ثروتمند دیگری صحبت میکنه مرد ثروتمند و ایلازر اظهاری بسیار منفی در مورد سهیم بودن با عیسی در اجرای ماموریتش هست. مسئله اول به مباشر زیرک معروف است این مثل بسیاری از مردم رو گیج میکنه چون خیلیها ها گمان میکنند که عیسی اینجا فرمان اختلاس میده اما این یک برداشت نادرست از مثل هست مثل در مورد مردی که مباشری داشت یا یک مسئول امور مالی اینجا جایی که یکی از مهمترین کلمات عهد جدید رو می‌بینید عهد قدیم دادن دهیک یک رو تعلیم میده عهد قدیم هدیه دادن رو تعلیم میده که به از دهیک است عهد قدیم به قوم خدا تعلیم میده که قربانی هایی بیارند که با ارزش باشه اما وقتی به عهد جدید میرسید، کلمه مباشر رو میبینید. مفهوم کلمه مباشرت اینه که شما قرار نیست فقط ده درصد درآمدتون و یا ده درصد از داراییتون رو به او بدید بلکه هر چیزی که هستید و هر چیزی که دارید متعلق به او هست واقعیت اینه که شما فقط مدیریت می کنید آیا چیزی رو که او به شما سپرده درست مدیریت می کنید؟ این شامل پول شما، مهارتهای شما، وقت و انرژی شما، عطایا و همه چیز شما میشه. یادتون باشه تمثیل داستانی هست که در اون شما حقیقتی رو که میخواید یاد بدید در قالب اون داستان مطرح می کنید. داستان اینجا اینه که مرد بسیار ثروتمندی مباشر یا امور مالی داره این مرد متوجه میشه که مباشرش سو استفاده میکنه اسراف میکنه و شاید اختلاص میکنه و پول او رو می دزده. او به مباشرش میگه که حسابرسانی رو دعوت کرده که به حسابهای او رسیدگی کند مباشر با خودش فکر میکنه و میگه فعلا قدرت دارم و هنوز اختیار پول ارباب دست منه اما وقتی حسابرس ها بیاند و دفاتر رو بررسی کنن من اخراج خواهم شد و دیگه دسترسی به پول ارباب نخواهم داشت پس چیکار باید بکنم او به گذینه هایی که داره فکر میکنه و میگه فهمیدم چیکار باید بکنم پس دست به کار میشه و با کسانی که به ارباب کار بودن ملاقات میکنه و میگه شما میدونید که من همیشه به شما علاقمند بودم و میخواستم کاری براتون انجام بدم چقدر بربا به من بده کارید؟ یکی میگه 100 خروار گندم و مباشر زیرک میگه بیا این صورت حساب تو هست بگیر و ورقه اونو عوض کن و 80 خروار بنویس و من پای اونو امضا میکنم و میگم پرداخت شده همون کار رو با کسی که 100 خمره روغن زیتون بده کار بود انجام میده وقتی که از اون بده کارها خداحافظی میکرد اونا شاد بودن و میگفتن خیلی از لطف شما متشکریم و او به اونها میگه به امید دیدار و البته مسئله اصلی اینجاست راهکار او این بود که داشت به آینده فکر می کرد و با خودش می فعلا من توی شرایطی هستم که میتونم بر اموال اربابم دسترسی داشته باشم اموالی که مال من نیست از این پولی که مال من نیست طوری استفاده میکنم که دوستانی پیدا کنم تا وقتی اخراج شدم در اون شرایط وقتی که بیکار هستم و کنترلی بر اموال اربابم ندارم این دوستان منو با شادی در خونه هاشون بپذیرم. وقتی جایی برای رفتن ندارم از من در خونه هاشون پذیرایی کنند. وقتی ارباب میشنه که این مباشر چیکار کرده او رو تحسین میکنه نه به خاطر این اینکه اختلاص کرده بلکه به این خاطر که او به آینده خود فکر کرده او از پولی که مال خودش نبوده استفاده کرده تا دوستانی پیدا کنه که وقتی جایی برای رفتن نداره و کارش را از دست داده جایی برای رفتن داشته باشه این داستانی بود که عیسی گفته حالا چه حقیقتی در این داستان به تصویر کشیده شده نکته بسیار عمیق اینجا هست عیسی میگه شما دقیقاً مثل اون مباشر هستی هر چیزی که دارید در واقع به کس دیگری تعلق داره من و شما دقیقاً چیزهایی رو که به ما داده شده مدیریت می‌کنیم همونطور که اون مباشر میدونست اخراج خواهد شد شما هم باید بدونید روزی خواهید مرد و روزی این سخنان رو خواهید شنید که تو دیگه مباشر نیستی حالا حساب مباشرتت رو پس بده. همونطور که این مباشر زیرک واقعاً معتقد بود که موقعیتش را از دست خواهد داد، شما هم باید باور کنید که روزی خواهید مرد. واقعیت مرگ شما چه تأثیری بر رفتار شما در مورد دارایی هاتون خواهد داشت؟ اون باید تأثیر شگفتانگیزی بر طرز نگرش شما بر این چیزها داشته باشه. یادتونه در کتاب جامعه سلیمان، سلیمان چطور اهداف و مفهوم زندگی رو دنبال میکرد. او دنبال ثروت رفت و ثروتمندترین مرد جهان شد اما روزی با توجه به واقعیت مرگش با ثروتش مواجه شد او گفت روزی من خواهم مرد چه کسی تمام ثروتی رو که اندوختم خرج خواهد کرد من هیچ کنترلی بر ثروتم نخواهم داشت حتی شاید شخص احمقی همه ثروتی رو که به سختی جمع کردم خرج خواهد کرد وقتی با توجه به واقعیت مرگتون با ثروت مادیتون مواجه بشید تأثیر بسزایی در روی کرد شما به ثروت و ارزش ثروت در نظر شما خواهد داشت. کاربرد این مثل بسیار عمیق است. این مباشر در دو موقعیت زندگی کرد. در موقعیت اول او شغلی داشت، قدرت داشت و بر ثروت ارباب کنترل داشت. او میدونست که بهزودی موقعیت دیگری هم خواهد داشت که هیچ اختیار و کنترلی بر ثروت اربابش نخواهد داشت. پس تا فرصت داشت در موقعیت اول از اختیارش استفاده کرد و طوری از اون ثروت استفاده کرد که دوستانی پیدا کنه که در موقعیت دوم با شادی از او پذیرایی کنند کاربوردی که مورد نظر عیسی در این داستان هست اینه. شما فعلا در موقعیت یا بود اول زندگی میکنید و مقدار معینی ثروت دارید عطایا دارید مهارت انرژی وقت و سلامتی دارید اما شما مباشر بر همه این چیزها هستید شما همه این چیزها رو مدیریت می کنید اونها مال خدا هستن. اما شما اونها رو مدیریت می کنید همونطور که اون مباشر اخراج شد، شما هم خواهید مرد و کنترل خودتون رو بر چیزهایی که به شما داده شده از دست خواهید داد. همونطور که مباشر زیرک از ثروت اربابش استفاده کرد تا دوستانی برای خود در بعد دوم پیدا کنه، شما هم باید همون کار رو بکنید. و از ثروتی که به شما سپرده شده تا برون مدیریت کنید. طوری استفاده کنید که وقتی به بود دوم یعنی موقعیت ابدی میرید دوستانی داشته باشید که شما را در منازل ابدیشون و یا های ابدیشون بپذیرند و به شما خیر مقدم بگن عیسی گفته در خانه پدر من های بسیاری هست اگر چنین نبود به شما میگفتم من میروم تا مکانی برای شما آماده سازم مفهوم این مثل این هست. در بود آینده یا جایگاه ابدی منازل بسیاری برای زندگی هست. جاهایی هست که بهشون منازل ابدی میگن. سلیمان در کتاب امثالش میگه کسی که جانها را سید کند حکیم است. احتمالا این چیزیه که این مثل به ما میگه. از آن در این دنیا به شما سپرده شده طوری استفاده کنید تا وقتی مردید و به جایگاه ابدی رفتید در آنجا کسانی باشند که از شما در خانه های ابدیشان پذیرایی کنند و مقدمتان را گرامی بدارند. شاید اونا به شما بگن، یادت سالها قبل در فلان تاریخ به یک گروه بشارتی پول دادی؟ اون پول باعث شد که اونا به یه سفر بشارتی برند و در اون سفر بشارتی من با مسیح آشنا شدم و نجات یافتم. اگه اون روز تو پولت رو با صداقت مدیریت نکرده بودی، امروز من اینجا در این خانه ابدی نبودم. به عبارت دیگه، این مثل داره میگه شما نمیتونید ثروتتون رو با خودتون ببرید و به نظر گنجتون رو در آسمان ذخیره کنید. یکی از راههایی که میتونید پولتون رو در آسمان پس انداز کنید اینه که پولتون رو طوری مدیریت کنید که باعث گسترش پادشاهی خدا بشه و کلیسای عیسی مسیح بنا بشه. مردم پیام نجات بخش عیسی رو بشنون و به نجات دست پیدا کنند. این روشیه که میتونید در بغد آینده دوستانی پیدا کنید. میتونید ببینید که تاثیر این مسأله چقدر متناسب با موضوع مطرح شده در باب 15 است. باز همیسا داره میگه آیا حاضرید در اجرای مفاد بیانیه من سهمی داشته باشید؟ من اومدم تا به کوران بینایی به اسیران نجات و به شکستگان و کوبیدگان شفا ببخشم آمدم تا نجات رو برای فقیران برمقام بیارم روح خداوند مرا مس کرده تا این کار رو بکنم حالا در این راه با من مشارکت خواهید کرد حاضرید در اجرای این ماموریت با من همکاری کنید آیا شما حاضرید با مسیح در اجرا و کاربردی کردن خدمت بزرگش در این دنیا هم کاری کنید شما میتونید به عنوان خادم، مبشر و شبان که بهشون کارگران حرفهای مسیحی میگیم این کار رو بکنید یا همینطور که در این مسئله آخر دیدیم میتونید با خرج کردن منبعی که خدا در اختیارتون گذاشته این کار رو بکنید. به عنوان یک مباشر امین شما میتونید با صرف وقتتون و مهارت هاتون این کار رو بکنید. میتونید دعا کنید و یا میتونید از شبانان، و مبشرین و کسانی که با مسیح در اجرای ماموریتش همکاری میکنن حمایت مالی بکنید. راه‌های زیادی برای همکاری با مسیح هست. اما سوالی که باید از شما بپرسم اینه. آیا واقعاً و حقیقتا با مسیح قیام کرده و زنده در ادامه اجرای بیانیش در این دنیا همکاری میکنید؟ بسیاری از تعالیم عیسی به ما میگه که زندگی ابدی ما در جایهای آسمانی در گرو پاسخی هست که امروز به این سوال می دید. این چیزیه که همه ما باید بهش فکر کنید. گفته میشه هفتاد که 75 درصد از تعالیم عیسی مربوط به مسئله مباشرت هست. البته این بدان معنا نیست که 75 درصد از تعالیم او مربوط به پول هست. بلکه معنیش اینه که 75 درصد از تعالیم او مربوط به اینه. وقت خودتون رو چطور صرف می کنید؟ زندگی خودتون رو چطور سپری می کنید؟ با چیزهایی که زندگی شما را تشکیل میدن، مثل انرژیتون، مهارتتون، اتایا و سلامتی و پولتون و تمام چیزهایی که زندگی شما رو تشکیل میدن چی کار میکنید؟ آیا زندگیتون رو طوریه داره میکنید که بشه بهتون خادم امین گفت؟ وقتی به عهد جدید میرسید مسئله فقط ده یک دادن نیست مسئله مباشرت هست روزی از شما سوالی خواهند پرسید و سؤالی نخواهد بود که چقدر به خدا دادید؟ بلکه میپرسند چرا انقدر زیاد برای خودت نگه داشتی؟ چرا همه اون پول رو برای خودت خرج کردی؟ اون پول من بود. چرا انقدر زیاد برای خودت خرج کردی؟ و چرا برای انجام مأموریت من انقدر کم دادی؟ خب، مباشر امین بودن یعنی چی؟ درست همونطور که مباشر زیرک می میدونست که اخراج خواهد شد، ما هم باید بدونیم روزی صدایی خواهیم شنید که میگه تو دیگه مباشر نیستی. و بعد خواهیم شنید که میگه حالا بیا و حساب مباشرتت رو بده. تمام چیزایی رو که به تو سپرده بودم چطور مصرف کردی؟ آیا طوری اداره کردی که با من در اجرای بیانیه همسهم باشی؟ مسئله مباشر زیرک پیام مثبتی به همراه داره چون با روشی خیلی منفی مردی رو به تصویر میکشه که به روشی مثبت به ما نشون میده که این امکان وجود داره که بتونیم با عیسی در اجرای مفاد بیانیهش سحیم باشی. بعد از اینکه عیسی این داستان رو میگه، کاربرد غم از اون رو به ما نشون میده. او در باب 16 لغا آیات ده و 11 میگه کسی که در امور کوچک درست کار باشه، در کارهای بزرگ هم درست کار خواهد بود و کسی که در امور کوچک نادرست باشه، در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. پس اگه شما در خصوص مال دنیا یعنی پول امین نباشید، چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ چیزی که این آیه صراحتن میگه اینه اگه ما در استفاده از برکات مادی امین نباشیم و منابع خدادادی رو درست به کار نبریم خدا برکات معنوی به ما نخواهد داد البته این بدان معنا نیست که هر مسیحی باید مثل جوان ثروتمند در مت 19 همه چیز خودش رو بفروشه و به فقرا بده در واقع شاید این تعلیمی برخلاف اون داستان باشه این شاید تعلیم میده که هر مسیحی میتونه بازرگانی زیرک و مدیری موفق باشه و شاید یک میلیاردر بشه چون مدیر خوبی هست اما وقتی میلیاردر شد باید بدونه که همش مال خداست تمام انگیزه او برای میلیاردر شدن باید این باشه که با عیسی در اجرای بیانیهش مشارکت کنه این بیان بسیار مثبتی است و به دنبال اون اظهاری منفی هم میبینی. عیسی داستان دیگری در مورد مرد ثروتمند دیگری نقل میکنه. لوقا میگه عیسی فرمود مرد ثروتمندی بود که جامعه نفیس و گرانبها ها می پوشید و هر روز به عیش و نوش و خوشگذرانی می پرداخت. دیگه بهتر از این نمی زندگی کرد. فقیری زخمالوت نیز بود به نام ایلازر که او رو جلو در خانه آن ثروتمند می که زندگی فلاکتباری داشت. اگه به این داستان به عنوان یک نمایشنامه سه ای نگاه کنید در اول مرد ثروتمندی رو میبینید که هر شب لای ابریشم و پر قو میخوابه و هر روز خوشگذرانی میکنه و زیافت برپا میکنه و بساط عیش و نوش برپا میکنه و هر روز وقتی سر کار میره گدایی رو می بینه که جلوی در او خوابیده و سگها زخمهای او رو میلیسند زندگی اون بیچاره بدتر از این دیگه نمیتونست باشه و مرد ثروتمند هم نمیتونست بهتر از این زندگی کنه صحنه اول تموم میشه و در صحنه دوم سحنه مرگ هر دو مرد رو میبینید هر دوی اونها میمیرن این همون چیزیه که سلیمان در کتاب جامعه گفته چیزیه که برای همه اتفاق می‌افته. ثروتمند و فقیر جاهل و دانا همه می‌میرن. مرگ بزرگترین نقطه مشترک همه ی انسان هاست مرد ثروتمند لای عبریشم ها و پر قوهاش در قصر مجللش میمیره و با شکوه و جلال دفت میشه و ایلازر در حالی که در کوچه دراز کشیده می میره و حتی شاید دفن نمیشه. معمورین بهداشت میان و جنازه او رو توی گاری می و به محل دفن زباله ها که بهش جهنم می گن می و همونجا می جهنم یا محل دفن زباله ها کلمه که ایسا برای دوزخ به کار می جایی که زائد و بیهوده ها رو اونجا می او رو در تپه زباله ها می هر دو می میرن و صحنه دوم هم تموم میشه اما وقتی پرده در صحنه آخر بالا میره نکته مثل رو درک میکنید. حالا هر دو مرد در جایگاه ابدی هستند و ایلازر فقیر رو در بهترین شرایط ممکن میبینید. دیگه از این بهتر امکان نداره او در آغوش ابراهیم هست و این نشون میده که دوستی صمیمی با ابراهیم داره مرد ثروتمند در جهنم هست و بدتر از این امکان نداره او در عذاب هست بین اونها فاصله زیادی هست و شکافی عمیق بین این دو مرد وجود داره شکافی که دائمی و ابدی هست به مرد ثروتمند گفته شده که هیچ کاری نمیشه براش کرد او فریاد میزنه ای پدرم ای ابراهیم بر من رحم کن و ای لازر را به اینجا بفرست تا فقط انگشتش را در آب فرو ببرد و زبانم را خنک سازد چون در میان این شعله ها عذاب میکشم اما ابراهیم به او گفت فرزندم به خاطر بیاور که تو در دوران زندگی هر چه میخواستی داشتی اما ایلازار از همه چیز محروم بود پس حالا او در آسایش و تو در عذاب از این گذشته شکاف عمیقی ما را از یکدیگر جدا میکنه به طوری که نه ساکنین اینجا میتونن به اون صوبیان و نه ساکنین آنجا به این طرف ثروتمند گفته ای پدرم ابراهیم التماس میکنم که او را به خانه پدرم بفرستی تا پنج برادر مرا از وجود این محل رنج و عذاب آگاه سازد مبادا آنان نیز پس از مرگ به اینجا بیایند اینجا ابراهیم با اشاره به عهد قدیم و کتب انبیاء و شریعت به او پاسخ میده ابراهیم فرمود موسا و انبیاء بارها و بارها ایشان را از این امر آگاه ساختند برادرانت میتوانند به سخنان ایشان توجه کنند من جواب داد نه ای پدرم ابراهیم به کلام ایشان توجهی ندارند اما اگر کسی از مردگان نزد ایشان برود یقیناً از گناهانشان توبه خواهند کرد ابراهیم فرمود اگر به سخنان موسا و انبیا توجهی ندارند حتی اگر کسی از مردگان هم نزده ایشان برود به سخنان او توجه نخواهند کرد و به راه راست هدایت نخواهند شد این پیام قدرتمندی هست من فکر میکنم یکی از جدیترین حرف هایی که به این مرد ثروتمند زده شده در امسال سلیمان سه هست که میگه پسرم مراقب زندگی خودت باش این یکی از تصاویر روشن در جایگاه ابدی هست این یکی از متن هست که میتونیم مفهوم آتش جهنم و بود ابدی مجازات ابدی و عذاب ابدی رو از اون متوجه بشیم شاید یکی از بدترین چیزهایی که در این بود ابدی میبینیم اینه که این مرد ثروتمند خاطراتش رو با خودش داره او در تمام طول ابدیت مجبور طرز زندگیش رو به خاطر بیاره. خاطرات 50 شست سالی رو که بر روی زمین زندگی کرده هر روزه به یاد میاره. او در طول زندگیش چیکار کرده؟ این مثل به دنبال مسئله مباشر زیرک اومده. خدا به هر کدوم از ما زندگی داده و ما مباشرین زندگی خود هستیم. نه تنها پولمون، پول شاید حداقل چیزی باشه که خدا به ما داده. زندگی ما وقت ما، انرژی ما، عطایای ما، مهارتهای ما و سلامتی ما چیزهایی هستند که طول زندگی ما را تشکیل میدن. مسئله اینه که شما با طول زندگیتون چیکار کردید؟ این مسئله مثال منفی بزرگی هست. مسئل مباشر زیرک میگه آیا با مباشرت درست و وفادارانه و اداره زندگیتون و همه چیزهایی که به دست شما سپردم با من در انجام و اجرای مأموریتم سحیم خواهید شد؟ مسل ایلازر و مرد ثروتمند تصویر حیرت از مردی هست که با عیسی در اجرای بیانیه ناصره مشارکت نکرده او به هیچ وجه نگران ایلازر که در تمام اوقات در مقابل در او خابیده نبوده کاربرد عملی این مثل اساسا کاربردی اجتماعی هست. بسیاری از مردم وقتی این داستان رو میخونند روی جزئیات جایگاه ابدی آتش جهنم و سلفور و غیره متمرکز میشن آلبرت شوایцер گفته که این تعلیم عیسی بود که او رو واداشت تا تمام موقعیت‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی رو به عنوان یکی از فیلسوفان برجسته، نوازنده، پزشک و الهیدان رها کنه و به افریقا برای خدمت به مردمی که از کلیه امکانات بهداشتی محروم بودند بره. وقتی او به این تعلیم انسان نگاه کرده میگه طولی نکشید تا فهمیدم که ایلازر که بر در خانه مرد ثروتمند خوابیده همون دنیایی هست که پشت درهای ما گرسنه و دردمند خوابیده وقتی شوائتسر به افریقا میرفت این طور گفت زندگی شما استدلال شماست من فکر میکنم این جمله بسیار عمیق است شوائتسر به دانشگاه رفت و با بسیاری از چیزهایی که اونجا آموخته بود موافق نبود او فکر میکرد که در اروپا بمونه و کتابهایی بنویسه و هر اونجوری که یاد گرفته بود رد و تکذیب کنه بعد او به این نتیجه رسید که زندگی شما استدلال شماست بنابراین راهی افریقا شد و هیچ کتابی در این باره ننوشت او گفت افریقا برای من حکم ایلازر رو داشت آیا شما می‌دونید دونید ایلازر شما کیه؟ من معتقدم که چالش بزرگ این تعلیم عیسی اینه آیا با عیسی در انجام خدمت او و اجرای معمولیتش همکاری می‌کنید؟ آیا با او برای بینا کردن کوران، آزادی اسیران از و شفای شکست دلان و این دنیا؟ همکاری میکنید در انجیل یوحنا ملاحظه کنید که چند بار و در چند جای عیسی ما رو به چالش میکشه که با او در اجرای بیانیه‌اش همکاری کنید. شاید چون لوقا یک پزشک بوده به این دلیلی که او تنها نویسنده که مسئله سامری نیکو رو به ما داده در لوقا با به و از مردی صحبت میکنه که غارت شده کتک خورده و به حال مرگ در گودالی رها شده بعد وقتی مردم میان و او را میبینن که در گودال افتاده از کنار او رد میشن اول یک کاهن و لاوی میان و از کنار مردی که در گودال افتاده رد میشن و میگن ما میدونیم که تو با مشکل بزرگی مواجهی و داری خونریزی میکنی و با مرگ مواجهی اما ما هم مشکلی داریم من دیر کردم و باید به کلیسا برسم و اگه بیستم تا به تو کمک کنم شاید من هم مورد حمله قرار بگیرم و مثل تو غارت بشم و یا شاید اگه تو رو لمس کنم دستهام خونی بشه و مجبورم برگردم و دستهام رو بشورم پس بهتره که درگیر تو نشم میبینیم که این مردان راهشون رو کج میکنن و از طرف دیگه میرن اما یک سامری از راه میرسه و مرد درون گودال رو میبینه که به حال مرگ رها شده او زخم ها رو پانسمان میکنه روغن و شراب بر زخم های او میریزه و او رو بر روی علاق خودش قرار میده و به کاروان سرای میبره و بعد از اینکه پولی به کاروان سرادار میده به او میگه از این مرد مراقبت کن و اگه پول بیشتری خرج کرده بودی در بازگشت به تو خواهم داد این مسئله عیسی که به نام مسئله سامری نیکو معروفه سه فلسفه زندگی رو نشون میده تصویر دزدان اولین فلسفه زندگیه فلسفه اونها اینه هر چی که مال منه مال منه و هر چی که مال شماست به محض اینکه بتونم ازت بگیرم مال من خواهد شد افراد زیادی در این دنیا هستند که فلسفه زندگیشون همین هست. به همین دلیلی که ما به پلیس و نیروهای نظامی نیازمندیم. جان کنیدی فقید گفته شما نمیتونید با مردمی گفته گو کنید که فلسفه اونها در میز مذاکره اینه. هرچی که مال منه مال منه و هر چیزی که مال شماست باید بر سرش مذاکره کنید. کاهن و لاوی مردان مذهبی این داستان در لغا ده این فلسفه زندگی رو به تصویر می هرچی چی که مال منه مال منه و هر چیزی که مال شماست مال شماست من برکت خودم رو دارم و شما برکت خودتون رو من مشکل خودم رو دارم و شما مشکل خودتون رو شما واقعا یه مشکلی دارید خون ریزی می کنید و به حال مرگ در اون گودال افتادید اما میدونید که هر کسی باید زندگی خودشو رو بکنه مال من مال من و مال شما مال شماست حالا نکته این مسئله اینجاست عیسی گفت که سامری این فلسفه زندگی رو به تصویر کشیده هر چیزی که مال شماست مال شماست و هر چیزی که مال منه اگه بهش نیاز داشته باشید مال شماست حالا شاید به این ترتیب ثروتمند نشید اما این فلسفه‌ای که عیسی در مورد ایل آزری که بر در خانه اون مرد خوابیده عنوان کرده در مورد دنیای گرسنه و دردمندی که اون بیرون خوابیده اینها سه فلسفه متفاوت زندگی هستند وقتی فلسفه عیسی رو در این مثل سامری نیکو درک کنید، یک بار دیگه خواهید دید که عیسی از شما دعوت میکنه و میگه ببینید من مأموریتی دارم، من خدمتی دارم و ای در زندگی دارم. روح خداوند مرا محس کرده که این خدمت رو به انجام برسونم و میخوام که شما هم در اجرا و تکمیل این خدمت و مأموریت با من سهیم باشید. آیا حاضرید با من در اجرای بیانیه و معموریت و خدمتم همراه باشید؟ من معتقدم که این چالش بزرگیه که این پزشک عزیز لغا ما رو با اون مواجه میکنه و عیسی رو در مقابل دیدگان ما قرار میده. لغا یک پزشک بود. او یک وجدان اجتماعی داشت. او مردی بود که نیازهای پزشکی انسانها رو میدید. وقتی او عیسی رو به ما نشون میده، انسانیت عیسی رو به ما نشون میده. اساساً او معموریت و خدمت مسیح رو در اون فضای خودخواهانه به ما نشون میده. نکته این پیام اینه. آیا با عیسی در انجام اجرای معموریت و خدمتش همراه خواهید بود؟ این چالش انجیل لوقا برای من و شماست عزیزان این یک دعوت و چالش هست عیسی من و شما رو دعوت میکنه که بخشی از معموریت اون باشیم و پیام اون را برای گمشدگان دنیا شکست دلان از و نیازمندان بازگو کنیم کسانی که نیازمند لمس ایسا هستند آیا میخواید این هفته صدای اون باشید؟ ما دعا میکنیم که این درس ها شما رو تشویق کنه و دعا میکنیم که شاهدی جسور برای ایسا باشید تا برنامه بعدی امیدواریم خدا به شما جسارت بده پیام اون رو حداقل با یک نفر در این هفته در میون بسارین باشد که خدا شما رو با فیزش پر کنه و شما رو مانند سامری نیکو به کار بگیره تا همسایه خوبی باشید.